دانگاه که فرستاده ای از جانب خداوند برایشان آمد که آنچرا با آنان بود تصدیق می داشت، گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر افکندند، چنان که گویی از آن هیچ نمی دانند.